داستان چهارم بینا من نه خولم نه خینگم نه موجود عجیب و غریبیم فقط موقع حرف زدن زبونم میگیره میدونید که لکنت این به این معنی نیست که وقتی میفهمید من لکنت دارم طرز حرف زدنتون عوض بشه و مثل یه بچه با من حرف بزنید یا خنده بگیره از حرف زدنم یا فکر کنید شعورم کمه و از عهده بیشتر کارا بر نمیام نه، فقط معنیش اینه که مثلا وقتی میخوام به شما سلام کنم به جای سلام میگم س -س -س -س سلام بچه که بودم با خواهر و برادرم میخوابیدیم تو تو پذیرایی. پنجره ها رو باز میذاشتیم یه شبیه گربه پریده بود تو اتاق اومده بود نشسته بود بالای سر من و خیره شده بود به صورتم من یهو چشم و باز کرده بودم و دیده بودم یه جفت چشم گربه خیره شده به من خب بچه بودم خیلی ترسیدم اینو همینطوری گفتم دلیل گرفتن زبونم این نیست اطمالا وقتی خیلی کوچیک بودم انداختنم زمینی جایی نمیدونم درست که به جواب نمیدن حتی نباردنم دکتری جایی تا لکنتم درست بشه قیافم یکم ناجوره زشت نیستم ولی خب میدونید یه مدلی هم دیگه چجوری بگم مثلا موقعی هر سبن لبان بگیره طرف کج میشه چشمم هم که انگار با مته کردن. تا حالام کسی ازم تعریف نکرده فقط یه بار چند سال پیش مدرسه که میرفتم یکی از بهم به گفت قیافه خاصی داری فکر کنم مخی چیزی نداشت ولی اون موقع کلی کیف کردم از حرفش تو خونه جلوی آینه وا میستادم می میبردم بالا و سعی کردم قیافم خاص کنم بنش کنید امروز سهشنبه بود الان ساعت یکی نصف شبه من بیدارم صدای جی جیجیرک و نفت رو اصابم. صداشون از خونه میاد رو پر شده از صدای جی جیجیرک خونه پشتیمون خرابه شده. همه جور جونه توش هست. من باید همین طوری به سر جام. تا تکون میخوارم خوارم بیدار میشه نوچ نوچ میکنه. ساعت دوی نصف شبه. من هنوز بیدارم. ساعت سرم که بشه من بازم بیدار میمونم. میدونم. یه بلایی سر خودم اووردم بردم که دیگه نمیتونم بخوابم. با دست خودم خودم رو اسیر یه نفر کردم که اصلا نمیشنه نمیدونم از کجا شروع شد، چه جوری شروع شد. فقط یه شب یهو فهمیدم چند شبه که دارم این بازیو رو میکنم. آره، اولش مثل یه بازی بود و از زور اینکه خوابم نمی برد این کار رو میکردم. خیلی هم خوشم میومد، ولی الان دیگه داره دیوونم میکنه، دیگه نمیتونم بخوابم. روزام از فکرش تا شب هوره دارم. همش تو ذهنمه همش میترسم یه بلایی سرش بیاد. ولی شب‌ها وقتی میبینم هنوز هم خیالم یه خورده راحت میشه. من وقتی داره خوابم میبره وقتی هنوز تو خواب و بیداریم توی ذهنم یه پنجره میسازم که بازه با یه مرد لاغر و موفرفری ازش آویزونه. یه دستشو گرفته به پنجره توی دستشم یه بوم نقاشی که نمیتونم ببینم چی توش کشیده. همشم داد میزنه میگه خانوم دختر خانوم تو را خدا خواهش میکارم کمکم کن نظر بیافتم. فکرشو بکنید شما دارید میخوابید. داره خوابتون میبره و دست خودتونم نیست بعد یه آدم هی داد بزنه و التماس کنه که نجاتش بدید اون جلوی چشماتونه داره میافته داره از ترس میمیره نمیتونید کاری واسش کنید نمیتونید بخوابید نمیتونید نخوابید تازه خود شما به وجودش آوردید و به این بلا گرفتارش کردید بعضی وقت وقتی دارم تو خیابون را میرم یه دفعه چشمم به یه پنجره باز میفته که اون مرد موفرفری ازش آویزونه فکر کنم کم کم دیوونه بشم مثل سپهر برادرم. آخه برادرم دیوونه است. شبا بیدار میمونه. تا صبح موزیک گوش میده. صبح که میشه میخوابه. هدفون میذاره تو گوشش، آهنگ گوش میده و تو کل خونه پیاده روی میکنه. بعد یهو داد میزنه یه چیزایی میگه. مثلا میگه آلمان، ایتالیا دارم میام. یا داد میزنه میگه به رگ خوابم بگید دیویس میلیون پول میخوام تا فردا. آخه برادرم فکر میکنه وقتی میخوابه توی خواب کار میکنه. یعنی رگ خوابش کار میکنه و پول میاره. فکر میکنه صاحب یه عالمه کارخونه معروفه. الان نمیتونم دقیقاً بهتون توضیح بدم که منظورش از رگ خواب چیه. بعضی از کلمه هاشو فقط خودش معنیشونو رو میدونه. چون خودش میسازتشون. قضای روزانش رو هم شب تا صبح میخوره. آخه صبح تا شب رو مثل سنگ میشه. هیچکس نمی‌تونه بیدارش کنه. بعد نیست شب یا همش صدای چنگال میاد تو اتاق آدم یا صدای خارت و خورت خوردنش. همه کارش با صدای بلنده همه کارش. حالا من روم نمیشه بعضی از کارش رو تعریف کنم یا صداهایی رو که درمیاره به شما بگم ولی از عمد این کارا رو نمیکنه منظورم اینه که عمدن نمیخواد کسی رو عذیت کنه تا نیم ساعت پیشم ده بار اومد در اتاقامو آروم باز کرد گفت بارسلونا رو به انگلیسی برام مینویسی یا یه چیز دیگر رو یا با صدای بلند گفت یادت هست بچه بودی دستتو بردم طرف اون پریزه برقی که خراب بود برق گرفتت منو منم داد دادم گفتم یواش چه خبرته در بیار اون هدفونو نه یا تو اتاق مگه نمیبینی خوابیدیم اونم گفت ببخشید خواب بودی <تص> کار همیشه شه این کارا خوارم من بیدار شد کلی و داد کرد سرمون اینم هم کار همیشه شه خواهرم تو تاریکی شبیه جن میشه. البته من جن ندیدم تعالا ولی فکر کنم خواهرم تو تاریکی شبیه جن میشه با اون موهای وزوزی جنگلیش. باور کنید، من از خودم نمیگم اینو. خودشم یه بار رو تو تاریکی دیده بود فکر کرده بود جن دیده. خب دیگه. آروم از جام پا میشم از اتاق میرم بیرون. میام تو راهرو. اتاقم تو طبقه اوله. طبقه دوم خونمون همیشه خالیه. مهمون که بیاد برامون میبریمش بالا. از جلوی اتاق برادرم رد میشم. چراغش روشنه یه گوشه وامیستم ببینم داره چیکار میکنه؟ منو نمیبینه. نشسته رو زمین تکه داده به دیوار داره سیگار میکشه. همون دستشو که سیگار رو گرفته میاره بالا یه شکلایی رو هوا میکشه که نمیفهمم چیان. خاکستر سیگارشم میرزه رو زمین. یه چیزی هم میگه که نمیشنوم. بعدم میخنده. میرم طرف اتاق بابام تعیر راه رو. مدل خونمون و قدیمیه صدای بابام داره میاد. همه جو تاریکه، هیچ کس من رو نمیبینه، همه خوابن دستامو میکشم به دیوار از پله ها میرم بالا میام رو پشت بوم همیشه وقتی خوابم نمیبره میام اینجا وقتی از سر کار برمیگردم هم بعضی وقتا میام درست کشیدم رو زمین، دستامو گذاشتم زیر سرم یک گربه رو دیوار پشت بوممون نشسته گربه ها تو شب ترسناکتر میشن از گربه ها خیلی بدم میاد گفتم که جریانشو براتون. باد میاد. این بالا چقد هوا خنکه، کی دارم کیف میکنم. باید در راهی پیدا کنم تا از شر اون مرد موفرفری راحت بشم. من همینطوری که هستم وقتی شروع میکنم به حرف زدن، مردم فکر میکنن مخی چیزی ندارم. وای به حال وقتی که واقعا از مخ تعطیل بشم. نمیخوام از مخ تعطیل بشم. میشینم سرم و میگیرم تو دستام. فکر کنم خودام شبیه جن شدم. اگه الان یکی منو اینطوری این بالا ببینه این وقت شب، حتما زهره ترک میشه. کیف می از این فکرم. از اینکه ترشناک شدم خوشم میاد. دور نگاه میکنم بلند میشم وامیستم. اکساس میکنم از بوم خونه بغلیمون یکی سرک میکشه زهر ترک میشم میتونم میرم پایین امروز چهارشنبه است ساعت 6 صبحه. من بیدار بودم و هستم باید برم سر کار تازه داره خوابم میگیره تو دستشوییم. اینجا خیلی دنجه یه گوشه رو پاهم نشستم دارم فکر میکنم به چه بهونه ای نرم سر کار فکر میکنم دارم دق میکنم نمیخوام اینجا دق کنم بلن میشم اصفاکم و برمیدم تن تن میزنم. می میام تو اتاقم. بابام تو حال نشسته جلوی تلویزیون صداشم زیاد کرده. خوارم بیدار شده نشسته سرش رو گرفته تو دستاش. میگم سلام. میگه چه سلامی؟ زندگی نذاشتین واسمون اه. اون از شب که جنابالی نزاشتی خوابی یا بلند شدی چراغ روشن کردی یا هی بلند شدی رفتی بیرون یا همش وول خوردی تو جاد با اون سپر بیشور بلند بلند حرف میزنی انگار نه انگار من خابیدم اینجا اینم از صبحمون كه باید این طوری بیدارشیم با صدای این تلویزیون لعنتی زندگی نذاشتین واسمون ه دقت کردید جمله اولشو دو بار تكرار کرد اینم یه جون لکنته دیگه مگه نه بلند میشه میره تو حال داد میزنه میگه بابا اول صبح چرا اینطوری میکنی ببینید اصلا مهم نیست که بدونید چه جور دارم. دوست ندارم زیاد ازشون حرف بزنم. که چی؟ مثلا بدونید بابام چیکاره چه چی جور آدمی یا چندتا تا خواهر و برادر دارم و چیکارن؟ یا برادران معتاد یا خلافکارن یا سالم و کارین؟ یا خواهرام درس خوندن یا ازدواج کردن؟ اینا چه رفت به شما داره؟ خیلی به خودم اهمیت میدید که حالا بیام اینا رو هم بهتون بگم؟ ولش کنید اصلا توی ایستگاه اتوبوسم، سرم پایینه. صبحا وقتی به زمین نگاه می گوله گله گله دهن رو زمین می بینی. مردم صبحشونو باطفکن رو زمین شروع میکنن. صبح مارم با حالت تهوع. ولی بازم صبحای زور دوست دارم. آخه هیچ کس حوصله نداره به آدم نگاه کنه. تو اتوبوسم همه چرت میزنن. سوار اتوبوس میشم. ردیف یکی مونده به آخر رو صندلی کنار پنجره میشینم. سرمو تکی میدم به پنجره. خوابم میاد. آفتاب افتاده رو صورتم چشممو باز میکنم ایستگاه آخره پیاده میشم. تون تون راه میرم. نمی به هیچ کس نگاه کنم نمیخوام نگاه نگاهم به هیچ پنجره ای بیفته. این خیابونا خیلی شغ پلوغن کاش از خجالت آب میشدم میرفتم زیر زمین. احتمالا اونجا هواش بهتره مثل یه سفره آب زیرزمینی. زمینی سر میخورم تا برسم به فروشگاه. میریسم به کتاب پروشی. من اینجا کار میکنم. یه کتاب دیگه؟ حالا که چی میام توضیح بدم که اینجا چه جور جایه و من تو چه جور فروشگاهی کار میکنم. نه اینکه خیلیم براتون مهمه بدونید؟ نه اینکه وقتی میای تو این فروشگاه خیلی با آدم اهمیت میدید. همچی بعضی قیافه سادم. وسادم. کیفنم میذارم گوشه. همکارم یکی یکی میرسن. کدوم حوصله ندارن به اون یکی سلام کنن. به زور به هم سلام میکنیم. شروع میکنم به کارم. دارم کتابا رو مرتب میکنم. کتاب تو قفسه ها میذارم. فروشگاه خلوته. قفسه کتابای روانشناسی خالی شده. همه میان میخرن. همه عین چی میان این کتابا رو میخرن. قورباغه را پرت کن بیرون چه کسی پنیر میخورد؟ خورد حکایت دولت عملگی از حال خوب به حالت تهوع حالا نوبت قفسه بعدی درد جاودانگی شیطان هی میره تو جلدم هی در میاد هی میگه ای کبری تروم این کبریت هارو این اوازیا کن که چورو کردن کلفت خودشون هر روز باید تر و کنی خاکشونو بگیری هی اینو بذار اونو رو بردار این مرتبهشون کن تحویلت نمیگیرن بیشترشونم که بیستر و تن اون وقت همچی قیافه میگیرن هرکی ندونه ما تو که میدونیم اینا یا غذای گوسفندان یا واسه قشنگی خونن کسی نمیخونتشون که دارم دنبال ی کتاب واسه یه مشتری میگردم یه آقای محترم و مؤدب کتاب میذارم رو ویترین برش میداره داره یه آقای 56 ساله است با موهای جوگندمی و ریش پرفسوری در مورد کتاب میپرسه براش توضیح میدم بعد یه سوالی میکنه که میفهمم اسم کتابو اشتباه گفته میگم نه اون کتابی رو که میخواین می می ای ای این نیست الان اون او او رو براتون میارم یه دفعه دیوونه میشه داد میزنه یعنی چی منو مسخره کردین دو ساعت معطلم کردین کتاب اشتباه میدین دستم میگم آقا شما اسم کتاب اشتباه گفتین من, من, من اشتباه نکردم میگه اگه شما یه زر شعور داشتین با دست اشاره میکنه به سرش می چه جوری باید با یه پزشک صحبت کنید؟ انگار داره به یه گوسفند نگاه میکنه. میگم تو دلم میگم اندازه شور آدم که به تحصیلاتش نیست، شاید سوادم کمتر از شما و اما معلوم شعور شما اندازه کوه مرغه. میخوام همه اینا رو بهش بگم. بلند میگم اندازه شور آدم مدیرم میگه: "خویشم شما بفرمایید، من جواب ایشونو میدم." میرم تا فروشگاه تو دستجویی یه گوشه میشینم. سلام میزارم رو پاهام سر میزارم رو دستم چقدر ضاحیه شدم؟ اه ولش کن به درک آدم بیشور برادر من با همه اون کارایی که میکنه از این یارو بیشتر میفهمه شورش خیلی خیلی بیشتره. با اینکه میگم دیوونه است ولی حداقل با ادب مهربونه با اینکه خودشو آدم مهم پولداری میدونه دلم آشوبه. فکرم پیش مرد موفرفریه آخه من بهوجش وجودش بردم ولی نمیتونم مراقبش باشم. پاک شدم. گلوم درد میکنه انگار یه هولو گیر کرده تو گلوم دوره چشام سیاه شده با پشت مغنم پاک میکنم مامانم همیشه سرم قور میزد میگفت 'تو همه كاراتو نیمه تموم میذاری هیچ کاری به آخرش نمیرسونی هم همینو میگه میگه تو خدای کارای نیمه تمومی هم مثل خودمه ولی خدای کارای نیمه تموم منم پارسال دانشگاه ول کردم دو ترم بیشتر نخوندم آخر ترم دوم بودم یه پسر مدام دوروبرم میپلکید از این بچه پولدارایی بود که به دخترای مثل من اصلا نگاه هم نمی کرد. یعنی اصلا نمی دید. فکر کنم تا اون روزی هم که یه دفعه اومد پیشم گفت سلام اجازه بدین بیام خاستگاریتون منو ندیده بود. هی میرفت رفت می اومد می بیام خاستگاریت. اول فکر کنم می مسخرم کنه علکی میگه ولی معلوم شد واقعا میخواد بیا خاستگاریم. هیچی دیگه رو پاهام بند نبودم از خوشحالی هر روز میرفتم واسه خودم لباس میخریدم به خاهم گفتم اگه میخوای شوهر کنی زودتر بکن چون واسه من میخواد خواستگار بیاد آخه خاهم از من دو سال بزرگتره گیر داده بود میگفت اگه راست میگی به بر نشونم بده تو. منم نمیخواستم پسرعر رو ببینه آخه اگه میفهمید کی میخواد منو حتما ازش خوشش میومد و واسه خودش برش میزد خواهرم یه همچین آدم نامزد می میگفت غلط کردی کی میخواد حتما خودش لال تشریف داره بعد هر هر میخندید میخواستم به پسره بگم بیاد خاستگاریم قبلش یه روز به یکی از همکلاسی هم گفتم برو ازش بپرس واقعا قصدش چیه چرا میخواد بیاد خاستگاری من همکلاسیم فرداش تو حیات دانشگاه پسره رو که با دوستش وایستده بودن دیده بود و رفته بود ازش پرسیده بود پسرم برگشته بود گفته بود با دوستام سری بازی شرط بندی کردیم شرط گذاشتیم هر کی به بازه باید هر کاری رو که بقیه میگن انجام بده منم باختم بچهها گفتم باید بیام خواستگاری دوست شما البته انم بگم من فقط میخوام بیام خاستگاریش قرار نیست باباباهاش عروسی کنم بعد با دوستاش هر هر خندیده بودن دیگه نرفتم دانشگاه هر کلاسی رفتم نتونستم ادامه بدم تو جمع نمیتونم درست حرف بزنم تا حالا تو دو سال پنج بار کارم عوض کردم. هر جایان قبولم نمیکنن اما دیگه نمی خوام اینجوری بمونم. درست می کنم همه چیزو ساعت هشت شبه من رسیدم جلوی در خونه کلید می میرم تو سپه نشسته تو حیات جلوی در راه رو نشسته روزانوهاش داره سیگار میکشه هدفنش تو گوششه داد میزنه سلام میگم ه یه یه یواش بابا علی سلام این سپره ما رو ببینید باورتون نمیشه سی سالشه خیلی کمتر نشون میده. تازه دانشگاه هم رفته، فیزیک خونده، ولی دیوونه است دیگه. همش چرت و پرس میگه. بعضی وقتا میگم نکنه حرفش واقعیه. مثلا مثل این فیلمایی که توش یه نفر هست که همه فکر میکنن دیوونه است ولی آخرش معلوم میشه همه حرفش درست بوده با آدمای دیگه اشتباه می‌کردن یا معلوم میشه طرف نابغه است. چه میدونم. میرم تو خونه. یراستم میدم تو اتاقم. بابام صدا میکنه میرم ببینم چی میگه. میبینم نشسته رو مبلش تو حال داره تلویزیون نگاه میکنه نمیدونم چه برنامه نگامی کرده خیلی مهربو شده باهام. حالا هم میپرسه میگه خسته نباشی بابا ما شام خوردیم تو هم بکش واسه خودت بخور. میگم چشم. میگه کسی عذیتت نکرده که؟ نه. بابا من اینجوریه برنامه های تلویزیون از این رو به اون روش میکنه. یه روز جواب سلامتو به زور میده هر هرچی فکر میکنم یادم نمیاد چیکار کردم که ناراحته. بعدم میفهمم یه نفر تو تلویزیون برگشته گفته حواستون باشه این بچهاتون که بیرون میرن به هایی مختلف ممکنه برن یه جا جمع بشن مواد مصرف کنن یا یه همچین چیزایی. بعد نمیدونم چرا بابام واسه من و خواهرمو قیافه میگیره و اخم میکنه. کلاً همه دیگرگونی‌هاش یک روز بیشتر طول نمیکشه. هیچ هیچی ندارم. خواهرم با دوستش رفتن طبقه بالا. خوشحال میشم. داره کلی واسه دوستش خالی میبنده در مورد اینکه یکی هست که کلی کشته یه اخلاق هم این خواهرم همیشه منو جلوی دوستش زایه میکنه واسه اینکه خودش خیلی باحال به نظر بیاد منو زایه میکنه من خودم اندازه کافی زایه هستم نمیدوندم خواهر آدم اینطوری میشه دلم میخواد زود خوابم ببره دیگه بیدار نشم میرم تو اتاقم لباسمو معوض میکنم میرم تو جام. ملوفه رو میکشم رو سرم من خالق بی عرضه و ظالمی هستم اگه عادل بودم اونو به وجود آوردم. چون باید ازش میپرسیدم میخوای با این شرایط سخت به وجودت بیارم؟ خر ماده مغزشو گاز نگرفته بود که بگه آره میخوام. اگر هم میگفت آره میخوام بهش میگفتم غلط کردی زر نزن. مرد موفرفری داد میزنه. دختر خانوم تو رو خدا نظر بیافتم منو بگیر. ساعت هفته صبحه. چشام دارن در میان. من باید برم دکتر. صبح سرکار نمیرم مرخصی گرفتم. خیلی خوبم میاد. خدا کنه دکترش با شعور باشه تونتون لباس می پوشم این چی دارم آرایش میکنم آخه با این قیافه دیگه رو نمیشه برم بیرون احساس میکنم از بس زشتم مردم تو خیابون به هم خیره میشن یا بعضیا حالشون ازم به هم میخوره درستم که بلد نیستم آرایش کنم خنده خندهدار شده خاهرم میگه داری چیکار میکنه دیوونه اونو اونجوری نکش تو چشمات پشت پلکت بکش میخوای برات بکشم جوابشون نمیدم میگه میخا براد بیام اصلا نمیدونه چه دکتری میخوام برم واسه چی میخوام برم. میگم نه میخوام تنها برم. یه وقتایی مهربون میشه بادم. مثل بابا از خونه میرم بیرون. تو مطب نشستم. کاش نمیومدم. من که میدونم بیفاید است. پر از آدم اینجا. هممون هی به هم نگاه میکنیم. اینا اصلا بهشون نمید مشکل داشته باشن. خیلی معمولی هن. خیلی عاقل به نظر میان مشکلشون هرچی هم که باشه هیچ کدوم به مسخره مال من نیست. منشیم از بس مثل ما رو زیاد دیده داره حالش از ازمون به هم میخوره. آخه هی میره تو دستشویی عوق نوبت نوبتم شده. قلبم هری هر میرزه پایین. میرم تو اتاق دکتر. خانم دکتر جش بلند میشه، کلی تحویلم میگیره. چقدر معدب محترمه. میگه بفرمایید بشینید. میشینم روی یک از سندلیا. میگه اونجا نه. بیا نزدیکتر بشین. میشنم اونجایی که میگه. چه قیافهای داره با اون عینکش چه لبایی لباش بینیش عینکش همهشون رو به بالاست نمیدونم یعنی نمیتونم بفهمم خوشگله یا زشته از اون قیافههایی که نمیشه فهمید خوشگله یا زشته پشیمونم از او مدنم میخوام پاشم برم لم داده رو صندلیش دستاش به هم قلاب کرده گذاشته رو میز همش نگاه میکنه دلم هره میرزه پایین از دکتر رو اصلا خوشم نمیاد هیچی نمیدونن ولی فکر میکنن خیلی میدونن همهشون همین جوری آدم نگاه میکنن از بالای عینک. میگه خوب چی شد عزیز اومدی اینجا؟ مشکل چیه؟ مشکل الان فقط خودشه. میگم را را راستش من فکر میکنم یعنی د د د دقیقا نمیدونم ولی فکر کنم دارم دیوونه میشم. یعنی چی؟ میشه واضحتر بگی چرا فکر میکنی داری دیوونه میشی؟ یه دستشو میذاره زیر چونش لبخند میزنه بهم یه لحظه احساس میکنم مهربونه خب ببینید من یه جورایی دچار توهم شدم البته توهم نیست منظورم اینه که چجوری بگم؟ خب شبا وقتی دارم میخوابم وقتی هنوز تو خواب و بیداریم یه مرد مفرفری لاغر رو میبینم که از یه پنجره آویزون شده و داره میفته تو یه دستشم یه بوم نقاشی که نمیتونم ببینم چی توش کشیده تازه بعضی وقتام تو خیابونه اوکی چند سالته؟ میخوام برم. کاش شد برم. دارم خفه میشم. چقدر بدم میاد ازش. میخوام بگم اوکی و زهره مار اما میگم بیست و دو. میگه همیشه دوچاره لکنت میشی موقعی حرف دادن. میگم آره چطور مگه؟ هیچی. فقط میخواستم یه دکتر خوب بهت معرفی کنم. فعلا بگذریم چند تا خواهر و برادر داری؟ چند سالشونه؟ خواهرم بیست و چهار و برادرم سی سالشه. پدرم مادرت چیکارن؟ بابام پواز نشسته، است. مامانم مرده. مادرت کی فوت کرده؟ استرس داری پات تو اینطوری تکون دو دو, دو, دو سال پیش نه استرس ندارم. دارم از استرس میمیرم. تابلوس تو خانوادت کسی هست که بیماری روحی داشته باشه مثلا افسردگی؟ میگم خواهرم مشکل عصبی داره، چند شخصیتیه. یعنی چی چند شخصیتیه دکتر بردینش؟ قرص حساب مصرف میکنه؟ نه، آخه کسی نمیدونه مشکل داره. خودشم نمیدونه. ببین، منظورم اینه که کسی که مریض باشه واقعا. میخواستم بدونم توی خونه مشکلی داری؟ کسی هست که بیماری روانی داشته باشه؟ میخوام بدونم زمینه مشکلی روحی تو خانوادت هست یا نه. خب خب خب خب، مریض به نظر من. خیلی خب، اوکی. بگذریم. ببین داره تون تون حرف میزنه. گوش نمیدم به حرفاش. میخواستم مشکل برادرمو بگم ولی وقتی سهر خواهرم مریض به حساب نمیاد، وقتی اون مشتری ریش پروفسوری که هرچی دلش خواست بهم به گفت مریض به حساب نمیاد یا خیلی کسای دیگه که الان یادم نمیاد، وقتی اینا سالم به حساب میان، خب اون وقت سپه نمون که پیش اینا دانشمن به حساب میاد، پس با این حساب سپه خیلی هم عاقله. خانم دکتر داره حرف میزنه. میگه: "البته هم که داری نهانجاری مشکل اصلی تو هم افسردگیه. این کلمه خارجی هم میگه که نمیفهمم. میگم؟ ببینید من میدونم می وضع بدی دارم الان و تتتت ارجیم میدم بمیرم تا ای این طوری زندگی کنم. ولی افسرده نیستم. لکنتم لو همیشه اینقدر زیاد نیست. میخوام بدونم راهی هست که بشه ذهنم رو پاک کنم مثلا از طریق هیبنوتیزم هی هی هی هی میشه از حرفم خجالت میکشم چیرس گفتم آخه توی فیلم میدیدم یه زن و مرد رفتن پیشه یه دکتر و ذهنشون از خاطرات هم پاک کردن فکر کنم دکتری داره حالش از به هم میخوره دکتر میگه دکتر منم من باید تشخیص بدم که افسرده هستی یا نه و چه راهی رو برای درمانت انتخاب کنم عصبانی شده هیچی نمیگم میکنه. همینطوری داره از بالای عینکش نگاه میکنه. خودکارش رو هی میزنه میز خیره شدم به خودکارش. با دستم گلوم و گرفتم فشار میدم. کاش نیومده بودم. میگه؟ ببین. من برات یه سری قرص مینویسم. باید آروم میگم فایده نداره. میگه؟ چی گفتی؟ ببین اگه بخوا اینطوری فکر کنی و قرص نخوری باید بیمارستان بستری بشی. این چه وضعیه درست کردی؟ دارم جدی میگم اگه قرص نخوری واقعا باید بری بیمارستان بخوابی میفهمی میگم خب میرم میخوابم شما چرا سر من داد میزنید یعنی چی که سر من داد میزنید من مثلا میخاین درمانم کنید قیافش یهو باز میشه لبخند میزنه خیلی احمقه میگه خب عزیزم من میخوام به خودت بیای متوجه وضعیتت بشی به خودت کمک کنی میخوام با هم بهت کمک کنیم اوکی قبول اق هی حرف میزنه هی حرف میزنه دهنش کف کرده از بس حرف زده هیا به دهنش پرت میشه تو صورتم معلومیز چی داره میگه خندم گرفته هرسم میگیره دکتر داره تونتون برام نسخه مینویسه دکتر داره نسخه میپیچه از مطب اومدم بیرون باید به خودم بیام. امروز دیگه میخوام به خودم بیام. ساعت 11:12 ظهره میخوام تا فروشگاه پیاده برم. خیابونا چقدر شلوغن امروز. یعنی چی؟ انگار همه امروز عروسی گرفتن. تو خیابون پره ماشین عروسه. مردم تو روز روشنم عروسی میکنن تو شب تاریکم عروسی میکنن تو روز روشنم بچه دار میشن، تو شب تاریکم بچه میشن. چه زیاد شدن. همه پر از بچه هست. اینا کی میخوان بزرگ بشن؟ کی میخوان تموم بشن؟ همه هم شبیه همه. و همه شبیه هم شدن. این فرشته هم قاطی کردن معلوم نیست از یه قالب به صورت چندتا میزنن شاید مدل کم یارن. مجبور میشن از یه مدل چندتا بزنن چی میدونم؟ میرسم به فروشگاه به همه سلام میکنم همه بهم به سلام میکنن. کیف آموزم یه گوشه شروع میکنم به مرتب کردن کتابا. جاهای خالی تو غفسه ها رو پر میکنن با کتاب هی حیمیره هی میان من کارون آخر هفته است فروشگاه پر از آدمه. همهشون اونام با هم حرف میزنن. رو فکر میکنن اومدن پارک. خیابونه پر از آدمه، پر از بچه اس. این بچه ها کی میخوان بزرگ بشن؟ چقدر میخوان بزرگ بشن؟ بزرگ که بشن میخوان بیانن کتابا رو بخرن، بخونن. ساعت 6:30 دقیقه عصر. از همکارم خداحافظی میکنم، میام بیرون. دارم آروم میرم طرف ایستگاه. سرما پایین. راه به راه خشک شده صبح رو زمین پره. مردم هی به هم تنه میزنن، هی از هم اسکرایب میکنن. میرسن به ایستگاه، اتوبوس داره را میفته. می, افته. می سوار میشم. همه سندلی ها پر شدن، باید وایستم. یه دختر بچه با مامانش نشستان ردیف اول اتوبوس، یه کار دستید دستشه. یه تخته چوبه که مثلا یه زمین فوتباله. چند تا آدمک دارن تو زمین بازی میکنن، مثلا دارن دنبال توب می دوان. یه یهو یه فکری میاد به ذهنم. خب، اگه این دختربچه بچه به این آدمکایی که ساخته و ولشون کرده تو این زمین بازی رو هجوم بده، اگه این دختر بچه موجود خوبی نباشه اگه مهربون نباشه اگه کارش درست نباشه ولی همه قدرت داشته باشه آیا میتونه یه جوری یه کاری کنه که این آدمک هر جور فکر کنن و از هر راهی برند، برسن به اینکه این دختر بچه که اونا رو ساخته موجود عادل و مهربونیه با خیلی کارش درسته؟ همچین چیزی میشه؟ آی مخم قاطی کردم فکر کنم راننده میندازه توی اتوبان گازش رو میگیره انگار ننگار داره اتوبوسو رو میرونه ویراژ میده. هی hey, این وونور میشیم میخوریم به هم هی hey, از هم عذخواهی میکنیم هر دو طرف اتوبان رو گاردریلا چراغ زدن شباه روشن میکنن خیلی قشنگ میشه. خوبیشون هم اینه که راننده ها بهتر میتونن چالچولله ها و دست رو ببینن و راحتتر و درستتر بیفتن توشون. لاب این راننده ها مریض به حساب نمیان اون وقت منو سپر روانی داریم. اتوبوس میرسه ایستگاه آخر اینجا اسکاه نزدیک خونه خونمونه. من یه آقای پیر فقط تو اتوبوسیم. من پیاده میشم. اون پیرورده داره سر بقیه پولی که راننده بهش داده دعوا میکنه. حتما پارهپور از پوول من هیچ وقت جت نمیکن با این راننده ها سر بقیه پولی و هرچی به دهم بشم. میپیچم تو کوچمون کوچه کوچمون دارن یه مجتمع مسکونی می سازد. خیلی عجیببهاخه چند روز پیش یه سالی میشد که همین جوری مونده بود. یعنی فقط اسکلت زده بودن رفته بودن کارشون. حالا بیاید ببینید چیکار کردن دیگه تقریبا داره تموم میشه ساختمونه حتما شهرداری کسی میخواد بیاد این بر چه سرعتی دارن این کارگرها چقدر ازشون کار میکشن دوپینگی چیزی میکنن یه هفته دیگه فکر کنم کارش تمومه حالا رو به بالا یا رو به پایین میرسم جلوی در خونمون مون گیت میرم تو میرم تو راه رو کیفام میذارم گوشه راه رو میشینم رو پله ها خیلی گشتمه خیلی تقریبا دو روز غذا نخوردم من فکر میکنم اون همه بچه که تو خیابونن اگه یه لحظه مامان باباشون حواسشون نباشه ممکنه بچه ها گم بشن یا برن زیر ماشین یا یکی بدزدتشون یا بزرگ بشن شد هزار جور مرض بگیرن کی میخوان بزرگ بشن چه جوری میخوان بزرگ بشن سرم پایینه هیچ کس سوراخ رو نیست هیچ کس نمیدونه که اومدم میرم رو پشتو بم چه بادی میاد لباسامون چه تکونی میخورن رو برن. دارن کیف میکنن میرم میشیدم رو ننده های پشت بوم. پاهامون نردهها، پاهام از نرده ها آویزونه. یه دستم گرفتم گرفتن به نرده ها. چه بادی میاد؟ چه حالی میده؟ خونمون چه ارتفاعی داره از این بالا. اگه یه پدر و مادری یه لحظه از بچهشون قافل بشن اون بچه ممکنه بیاد رو پشت بوم خیلی راحت از اینجا پرس بشه پایین. مادر رو بیشتر وقتا حواسشون نیست. یکی دیگه باید حتما حواسش به این باشه. درام به جریان اون کار فکر میکنم. درا فکر میکنم اگه اون بچه یه همچین کاری بکنه یعنی یه جوری یه کاری کنه که این آدمک‌ها هر طور که فکر کنن از هر راهی که برن به این نتیجه برسن که اون دختر کوچولو عادل و مهربونه نه بعد این قدرت و توانایی رو به آدمکوش بده که بتونن به این چیزان فکر کنن که نکنه خالق ما این کارو با ما کرده باشه که هر جور فکر میکنیم به این نتیجه برسیم که اون مهربونه و کارش درسته نکنه اینطوری نباشه که اینا چی تو فکر من؟ چه بادی میاد؟ اگه دستامو رو کنم راحت رو هوا بلند میشم. دارم به ساختمان میل تو کوچه بقلی نگاه میکنم. از اینجا فقط پنجرهی طبقه آخرش معلومه. یه زن با یه بچه دارن از پنجره تو کوچه رو نگاه میکنن. دارن میخندن. به چی دارن نگاه میکنن؟ به چی دارن میخندن؟ دارم میخندم. دارم تصور میکنم اون مرد مفرفری از همون پنجره آویزونه ولی این دفعه میتونم ببینم چی کشیده رو بومش. صورت منو کشیده. کیف میکنم از این فکرم. یکی نمیدونم از کجا یهو داد میزنه. سلام. آی قلبم، هوری ریخ پایین. نازیکوت بیافتم. با دو تا دستم نردر رو میگیرم. برمیگردم سمت راست. رو پشتبوم سمت تراس کسی نیست. و برمیگردم اون طرف. اون طرف دوتا خونه اون ورتر یه پسره هست، وایستاده رو پشت بومشون ای وای، این از کجا پیدا شد؟ همون پسر است، همون پسر, پسر همسایهمون که تو اتوبوس میبینمش. هر روز تو رو با من سوار اتوبوس میشه میاد میشینه صندلی که رو به خانوماست اولو فکر میکردم فقط به من نگاه میکنه خوشم میومد از نگاه کردنش بعدا دیدم به همه دختر رو به نوبت نگاه میکنه سا. زهرم ترکید اه وسی چی اومده رو پشت بوم؟ میگم سلام چرا اومده اینجا چرا نمیره برو پی کارت دیگه همینطوری وایساده داره نگاه میکنه نفس نفس میزنه برو خونتون دیگه بازداد میزنه چرا نشستی اونجا؟ ببین میگم بیا این ور من میترسم بیافتیا بلن بلن میخندم نسی که بیفتم. این چرا همش داد میزنه؟ دوباره داد میکشه؟ ببین قلبم داره میاد تو دهنم میخوای بیام اون طرف دست تو بگیرم بیایم این طرف بشینیم یکم هوا بخوریم یا حرف بزنیم یا بیام دست تو بگیرم بیارمت ات این ور برم پایین از یخشال بستنی بیارم با هم بخوریم آره دارم میام. باشه؟ داره پاشو میذاره این طرف رو دیوار همسایه بقلیمون داد میکشم نه نه نه نه خیر من بستنی نمیخوام برو خونتون دیوونه میگه اوکی اوکی باشه خدا دیونه است بستنی بیارم بخوریم علاقم خر اینم شد حرف فقط هیکل گنده کرده موخی چیزی نداره منم دوباره داد میزنم اوکی یا زهر مار ب, ب, برو گمشو پایین فاین گفتم همتری واکساده رو دیوار میخواد بیاد این طرف. اعصابمو خورد کرده. دستام دارن میلرزن. قلبم تون تون میزنه. داره از جاش کنده میشه. خیلی هول شدم. یخ کردم. با اینو نگاه میکنم. تو کوچه هیچ کسی نیست. عجب بادی میاد. ترم یخ کرده. میترسم. ستاره اسم منو میدونه؟ میگه ببین ستاره. میپره رو پشت من دارم نگاش میکنم. میگه ببین من الان میخوام یه کاری بکنم خب یه دقیقه گوش بده بابا چی میگه چقدر جوگیر شده میپر رو پشت بوممون چقدر ترسیده بیچاره هل شده فکر کرده میخوام چیکار کنم میخواد ادای قهرمانای تو فیلما رو در بیاره نمیدونم چرا خندم قفل نمیشه دارم میترسم میترسم بیفتم روسریم باز میشه باد میبرتش میفته سمت حیاط و باد میبره چه دفعه فکر میکنم باید بپرم روشاریمو بگیرم.